تو هوای مرده منو تنها صدا است. صدا که زمان خواهند شد تنها صدا, صدا, صدا, صدا رادیو پارسان رادیوی شما موج اف ام 93 سلام به عزیزای پارسانی یک چارشنبه دیگه شد ساعت 6 تا 7 از گویلف دوباره در خدمتون هستیم من ساسان هستم امروز پنجوم فوریه 2014 برابر با 16 بهمن 1392 اینجا ما برف خیلی سنگینی گرفتیم و قرار یکی دو روزی هم ادامه داشته باشه خلاصه خیلی هوای سرد و سختی داریم منم سلام میکنم به همه عزیزان پارسانی خودمون نیلوفر هستم و مثل چارشنبه های دیگه با شما همراه هستیم همونطور که ساسان گفت در این هوای سرد امروز هم ساینا به خاطر برف شدیدی که اومده بود و وضعیت جاده نتونست با ما همراه باشه از همینجا به اونم سلام میکنیم و جاشو خالی میکنیم ساسان خیلی خوشبینانه گفت یکی دو روز همچنگ خوب اومدی حتی مثل اینکه دو روزی ما استراحت آره. خواهیم داشت بعد دوباره حتی خب دما چون کماکان خیلی منفی هست بنابراین اینا یخ میزن و خیلی وضعیت خوب نخواهد بود آره. ولی دوباره فکرم بارش برف شروع بشه و دوباره این کولاک رو باشیم خب امروز هوا رو داشتی نگاه چه جوری بود؟ هوا والا الان فکر کنم حدود منفی 6 درجه باشه بعد ولی خب به خاطر بادی که میاد توزه منفی 12 60 درجه خیلی سرده ولی خیلی سرده آره, آره بعد ساسان اوضاع تو ایرانم خیلی خرابه آره شنیده که آره برف خیلی سنگین و بی‌سابقه ای اومده به خصوص توی استان‌های شمالی گیلان و مازندران و متاسفانه خیلی خرابی به بار آورده و امروز داشتم می‌خوندم که حتی 5 نفرم طبق آخرین خبرو جونشون رو متاسفانه هموطنانمون از دست دادن نه. بیشتر به خاطر این که مثلا از جای لیز خوردن و افتادن و چند نفرشون هم ظاهرا مثلن که بیماران دیالیزی بودن متاسفانه ای که اینا به خاطر بسته بودن راه نتونستن برسوننشون به بیمارستان و متاسفانه جونشون رو از دست دادن بعد مواد غذایی تو بعضی از روستاهای استان مازندران تموم شده یه عکس رو من داشتم توی وبسایتا که با هلیکوپتر چون ارتش و سپاه وارد قضیه شدن با هلیکوبتر داشتن بسته های مواد غذایی رو مینداختن پایین چون اصلا یعنی حتی امکانی نبود که بشینن برصورت امیدواریم که هر چه زودتر این قضیه هم به خیر و خوشی تموم بشه تا اینجاش که متاسفانه میگم این خبر بعدیم بوده چند تا سقف خیلی از خونه‌ها تو شهر تونکابون ریخته به حال دعا می‌کنیم که هموطنانمون هم در ایران زودتر از این شرایط خلاص بشن. آره ما یه مقدار خب خیلی هم با برف سنگینی نمیگیریم بله. تو ایران من فکر کنم اومدند آره اینم هست. خونه ها هم اونطوری ساخته نشده به حال برای شرایط هوای خیلی سرد و به صورت امیدواریم قضیه حل خب برای امروز ما چند تا برنامه براتون داریم. اول قسمت دیگه از مصاحبه نیلوفر با کیارش رو خواهیم داشت در مورد موسیقی که براتون پخش خواهیم کرد تو برنامه امروز بعد چند تا خبر ورزشی داریم و انشالله اخبار مرورد به جشوار فجر رو گزارش خواهیم داد علا خب زحمت این مصاحبه رو ویرایش و ایدیتش رو نیلوفر کشیده حالا انشالله طی برنامه ما این رو پخش خواهیم کرد و آره حالا خلاصه جزیاتش رو بعدا نیلوفر بهتون میگه خب برای شروع برنامه آهنگ اول بریم که میدار گرم شیم آهنگی به نام رابطه از شادمیر حقیلی انشالله که خوشتون بیارم آره امیدواریم یه خورده اینقدر حرف سرما و برف و اینا زدیم خودمونم دیگه یه خود سردمون شد با این آهنگ که حالا یه خورده همچین حالا هوای شاد داره با ما همراه باش. من میرم من سخت از این حرف ها دورم منم یه روز عاشقی کردم از وقتی عاشق شدم اینجورم جورم داروندام پای ش رفت چیزی نود درد نامهدو این جای خالی که تو سینم هست قبلا یه روزی جای قلبم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 دل من خاطر ایرت شد از وقتی عاشقش شدم ترسیدم از وقتی عاشقش شدم بعد شد این دوز گاروت کرده. بعد از شنیدن این آهنگ که آخرین کار شادمهر مهر عقیلی بود برگشتیم دوباره با شما هستیم در رادیو پارسان یه خبری رو من خواستم اینجا بدم که خیلی خبر گولفی و نوروزی و بهاری خوبیه و اونم از این قرار هستش که آیسگ که در واقع انجمن دانشجویان ایرانی مقیم گولف هست تصمیم گرفتن که امسال یک برنامه خیلی خوب و شادی روی جشنی رو به مناسبت عید نوروز برگزار بکنن در گویلف و خیلی هم بچه های فعال و بسیار علاقمندی هستن. ما خواستیم که از این فرصت استفاده بکنیم و از اینجا اعلام بکنیم که اگر کسانی یا شرکت هایی هستن که دوست دارن در برگزاری این جشن مشارکت داشته باشن کمک کنن یا به عنوان اسپانسر و حامی مالی در واقع به حضور داشته باشن خیلی با کمال میل از حضورشون استقبال میشه و میتونن کسانی که علاقه هستن با ایمیل این انجامن که آدرس ایمیلشون هست isag isag at uo که uo هست آدرس ایمیلشون تماس بگیرن همچنین یه صفحه هم دارن روی فیسبوک که باز به اسم همین آیساق هست مونتا چندتا آیساقی دیگهم مار بازش میکنم هست در واقع به اسم ایرانیان students association of gulf رو پیج فیسبوکشون هم باز اطلاعات هست و خبرها بر صورت اگر کسی علاقه بود که حتما با دوستانمون تماس بگیرن حالا انشالله قراره که ما هم اطلاعات مربوط به این موضوع رو تو رادیومون هم تو صفحه رادیومون تو فیسبوک بگیم و حالا انشالله این مشارکت انجام خواهد شد. خب الان میرسیم به پخش تونیلو فر با کیاراش که در مورد موسیقی سبک‌های غربی صحبت کردید. خب بگو ببینم تو این قسمت مصاحبه چی قراره بشنویم؟ آره اگر شنوندهای رادیو پارسان که علاقه من به موزیک به خصوص موزیک غربی و باز به خصوص موزیک راک و در واقع زیرشاخه های راک بودن دنبال کرده باشن ما این هفته قرار بود که بخشی سوم این مصاحبه رو پخش بکنیم. Yeah. <laughs> که در واقع وارد زیرشاخه‌های موسیقی راک میشیم یه توضیحات باز نسبتاً بیشتری راجع به بعضی از زیرشاخه‌های موزیک راک که آرش لطف‌کدل در این قسمت مصاحبه برای ما داد و من فقط یه توضیح میخواستم بدم که ما معمولاً توی برنامه‌ی رادیو پارسون خود آهنگ خارجی پخش آهنگ های ایرانی پخش میکنیم مون در این مصاحبه چون که وسطش ما نمونه های زیادی در واقع لازم نبود که از آهنگ‌های خارجی پخش بکنیم انتهای برنامه رو یکی از در واقع ترانه های یه آهنگ خیلی قشنگی بود که راجع به اون سبکی که حالا تو مصاحبه دوستان میشنون بود اون رو آه. حالا اجازه بده که تو مصاحبه آره الان لو ندیم دیگه آه. سورپرایز باشه دیگه آره اونو به صورت کامل پخش می‌کنیم ضمن اینکه یه توضیح کوچیکم راجع به یک بخش خیلی کوتاه از یک آهنگی در واقع هستش که مال گروه پینک فلوید و این آهنگ رو من مطمئنم که Another Brick in the Wall که بقیه من مطمئنم که بیشتر دوستان این رو به هر حال آره این رو شنیدن چون که در قسمتی از برنامه به سبکی که در واقع راجر واترز وارد کرد در موسیقی راک پرداخته میشه این رو در واقع به عنوان نمونه من سعی کردم که در واقع مساهبه رو با چه زهود یک دقیقه از این آهنگ شروع بکنم بنابراین با بخش سوم مصاحبه ما در رابطه با موسیقی که با کیارش انجام دادیم با ما همراه باشین Dark sarcasm in the classroom Teach to leave them kids alone خب کیارش دوباره برگشتیم با تو در رادیو پارسان اگه یادت باشه تو بحث قبلی که در رابطه با موزیک داشتیم اشاره کردی به تاریخچه موسیقی راک و اینکه چه به وجود اومد و ضمن اون یه توضیحاتی هم راجع به راک کلاسیک دادی و سازهای اصلی که در واقع در راک استفاده میشه حالا چون این سبک راک خیلی طرفدار داره به خصوص حالا بامبین شنودای ایرانی هم می بینه ولی شناخت آنچنانی در موردش وجود نداره من میخواستم ازت خواهش کنم که یه توضیحاتی راجب زیرشاخه های مختلف راک برای شنواندگان رادیو پارسان بدی چون خیلی از این زیرشاخه ها من داشتم قبل از برنابات صحبت میکرم مثلا خودم متوجه شدم که من نمیدونستم اینا زیرشاخه راک حساب میشم فکر میکرم مثلا یه سبک مستقلن اینا که معلومش هم ازت که در این رابطه برام یه توضیحات بدی. خب لازمه که من قبل از اینکه شروع کنم یه اشاره کوچولو به چیزایی که قبلا گفتیم بکنم که خب کلاسیک راک از کجا شروع شد ما گفتیم که از موسیقی کلاسیک گرفتن و شروع کردن و خب سازهای اصلی موسیقی یعنی کلاسیک راک گیتار الکتریک بود گیتار بیس بود گیتار آکوستیک بود و پرکاشن یا درامز یا سازهای کوبه‌ای خب این سبک ادامه داشت و چندین سال در دهه شست و هفتاد هنرمندهای فوقلادهی بودن که خب انقدر بی نظیر بودن و انقدر یه سبت... حالت یه انقلاب بود نمیدونم راجع وودستاک استاک یا نه یه کانسرتی بود که به قول معروف در یه صحرایی برگزار شد و چندین میلیون نفر رفتن اونجا و بعد به معروف خدایان موسیقی راک ام. در اونجا نواختن و به قول معروف یه اتفاق تاریخی محسوب میشه تا یه اتفاق موسیقایی در مثلا دنیا دارست. و خب اینا خیلی خوب بودن همه می نظیر بودن ما خیلی هاشون رو می شناسیم لدزپلین رو می ما،, ما جنیس جپلین رو ما جیمی هریکس رو تو ایران خیلی هاشون می آمد هایی بود که اون موقع من خاطر دارن که پدرم می خرید و به برد خونه بساطه صفه بود واینال می در این کانادا بهش و خب این ها ادامه داشتن از دهه شست شروع شدن دهه هفتاد بودن اوایل هشتاد بود که خب دیدن که این موسیقی ها به هر حال همه تو این متبهر هستن و یه مقدار تکراری داشت می شود. خب گوش ها عادت کرده بود و دیگه اساتید بزرگی در این موسیقی بودن که باش به این فکر رفتدن که خب بیاییم یه چیز جدیدی واردش کنیم اول دهه هفتاد بود که سبک پراگرسیف راک وارد شد پراگرسیف راک سبکی بود که اومدن یک سری سازهای فرعی الکترونیک رو باردش کردن مثل سینتیسایزر ها مثل کیبوردها ها مثل اسباتی که با سینتیسایزر سنتیسایز. سایزر اصولا الان، الان، یک یکی نامه سازی است الان ولی از اینجا گرفته شد که نیست صداسازی می کرده سینتیسایز می کرده خب و معروف ترین چیزی که خب ایرانیا خیلی خوب می شستن. گروه پینک فلوید بود که اومد با یه آدمی به نام الان پارسون که خیلی معروفه و همه می شناسن بچه ایرانی اومد سایزر و سازهای به قول معروف ملودیک و وارد موسیقی راک و پروگرسیف راک یا راک پیش رو راک پیش رونده راکی که ترجمه فارسیش خیلی مقابل پیش, آره پیش رو از این جهت بهش میکفتن پیش رو که اومده یه حرکت دیگه ای رو انجام داده و یه مقدار اوایل مخالفت باش انجام می‌شدنی خب کسایی که روی راک کلاسیک کلاسیک راک در اصلا راکی کلاسیک شاید کلمه جالبی نباشه تعصب داشتن گفتن راک یعنی درامز، گیتار بیس و گیتار الکتریک <تصفيق> و چیز دیگه ما حق نداریم اضافه کنیم ولی <تصفيق> خب از پینک فلوید واقعا اینکه حالا در ایران شناخته شده در جای خود و واقعا در دنیا پینک پنل قبول داشتن گروه انگلیسی بودن که ما قبلا هم راجعشون صحبت کردیم دو تا مغز متفکر داشت دیوید گیلمور و راجر واترز که با همکاری آلم پارسون واقعا اسواتی رو تولید کردن یک جوری از موسیقی راک معرفی کردن که تا حال شنیده نشده بود و خیلی عجیب بود خیلی مردم سورپرایز شدن متعجب شدن از اینکه این جور موسیقی اومد و خب راک اجازه دادنید یه نقطه اطفی بود که سازهای دیگه به راک اضافه بشه خب ما موسیقی جاز و قبل از به قول معروف موسیقی پراگرسیف داشتیم موسیقی جز هم یک نوع موسیقی راک محسوب میشون به این شکل که ما از ویولونسل یا همون چلو و مثلا وایولین یا همون ویولون به زبوره فارسی هم صحبت کنیم استفاده میشد درش بعضی موقع هارپ هارپسیکورد یا همون چنگ فارسی قاطیش میشد و ریتماش و به قول معروف سرعت موسیقی مقدار متفاوت بود در این موسیقی ولی خب گیتار بازم حرف اصلی رو میزد و سازهای دیگه بود که همکاری می کرد بعد از این مدتی که گذشت به ما دهه 80 که دههی اوج موسیقی الکترونیک و موسیقی پاپ بود ما گروه های خیلی خوبی داشتیم در دهه هشتاد مثل آها، مثل اریجور، مثل دپچ مود کنخوینا رو همه رو خیلی خوب میشناسن بعضی به این فکر رفتدن که خب چرا لگه این موسیقی راک و ساسهای دیگه باید چرا ترامپت توش نزنیم؟ چرا؟ چیزهای دیگه قاتیش نکنیم حالا که اینقای موسیقی قویه و ما میتونیم ساز توش داشته باشیم و اصلا خود این موسیقی بر موسیقی کلاسیک بوده چرا سازهای دیگه رو قاتیش نکنیم پس در واقع اصلا این ایده اینکه حالا یه سازهای دیگه هم یعنی بیاد به اون سازهای اولیه‌ی موزیک راک اضافه بشه از پروگرسیو راک شروع شد میتونیم بگیم شروعش اگه بخوایم خیلی خب مختصر اشاره کنیم خب یه تاریخچه‌ای هم داره ولی خب تاریخچش در وقت ما نمی ولی آره میتونیم بود که به قول معروف سازهای دیگر رو وارد راکی کلاسیک کرد. خب که پینک فلوید نمونه خیلی خوبش بود. درست. و بعد چه زشاخهای دیگه اون وقت به وجود اومد با اضافه شدن سازهای دیگه. سازهای دیگه آره خیلی این بحث بازم مفصله. دیگه وقتی ساز اضافه شد ما اومدیم گفتیم که آقا الटरनेटیو میوزیک ما منظورم بچه های که تو کار موسیقی بود در منظورم آقا اما اینکه اونجا کار میکرد من اون موقع حتی نیومده بودم که این اسم گذاشتن. اومدن گفتن که alternative music یعنی موسیقی چند گذینه ای یعنی شما گزینه های مختلف رو میتونید دارش استفاده کنین شاید خیلی آشانیدن alternative alternative یا چند گذینه ای ولی نمیدونستم معنیش از کجا آمده موسیقی alternative که وارد شد و اومدن خب سازهای مختلف رو وارد کردن این سازهای مختلف که وارد شد دیگه آزادی رو بهشون داد برای ورود سازهای دیگه حالا بود که سرعت سبک نوع نگاه به ساز استفاده مختلف حتی از سازهای اصلی موسیقی راک سبکای مختلفی رو شکل داد سبکی که الان خیلی در حال حاضر بذار برگردیم به امروز چون ممکنه دوستان دوستش هم چیز سری رو بشنون سبکی که به نام ایندی راک از های راک سب سبک ایندی راک ایندی خیلی فکرونو ایندی از هندیا این میاد یا ایندیان میاد ایندی از کلمه ایندیپندنت میاد به نام یعنی به چجوری بگم کنیم مستقل میشه این استقلال به خاطر موسیقیش نبود این استقلال به خاطر این بود که بچهای خیلی بااستعدادی بودن که شرکت های بزرگی تجاری باشون قرارداد نمیبستن درسته اینا تصمیم گرفتن که خودشون توی زیررزین های خونشون شروع کنن همون کاری که تو ایران الان داره اتفاق میفته به تولید موسیقی و اینا مستقل بودن از شرکت های بزرگی تجاری و خاطر این اسم ایندی رو گرفتم. ا اتفاقا چقدر خوب شد که به این بحث اشاره کردی چون من همیشه فکر می‌کردم که فقط از نظر تکنیک مثلا چون یه چیز مستقلی بوده یا یه قدم متفاوتی بوده یه سبک متفاوت و شاید جسورانه ای بوده که در راک حالا ایجاد شده من فکر می‌کردم که شاید این اسپش داده شده حالا سوالی که برام پیش اومد اینه که آیا دوتای اینا بوده یا فقط این مسئله در واقع تجاریش بوده که به صورت مستقل این موزیک تولید می‌شده البته شما درست فکر... کردین. این به این شکل شروع شده اسم این دیروش ولی چون این دوستان کسانی که به صورت مستقل موسیقی تولید میکردن چون در بند هیچ رئیسی نبودن که بهشون میگه چه جوری نو هر سازی رو وارد کردن ها یه دفعه یک کسی توی دانشگاه که گروه موسیقی را میداخته و یه نفر ترامپت میزده یکی ساکسیفون میزده یکی فلوت میزده و همچنان راک بوده. و همچنان یعنی یه جور راک, راک آزاد در واقع میتونیم بهش بگیم بله. یعنی در واقع شاید آزادترین سبک راک باشه. بوده و ایندیا شکل گرفته. البته قبل از این باز هم بوده مثلا گروهی داریم به نام جترو تال که فکر می کنم بازم ها خوب بشناسن که خب از سازهای بادی استفاده میکنه. فلوت ساز اصلی این گروه بوده. و به قول معروف کنسرتاش فوقلاده ده و خیلی خوب اتفاقا این گروه جتروتال چون اشاره کردم به این الادی که خوب میشناسن درسته. اون موقع اسم این دیراک روی این گروه نبود آه. چون اون زمان زمانی که جتروتال شروع به کار کرد پراگرسیف بهش میگفتن چون بازم ام. یه ساز دیگه رو بردود درسته. ولی الان این تو این دستبندی های جدید که خب خیلی زیاد شدن این دیراک ها دقیقا حرف شما درسته. این دیراک ها خساسهای مستقل از به خاطر مستقل بودن به خاطر آزاد و رها بودن بهشون ایندی میگن و ایندی روشون موند از اونجا شروع شد ولی الان به این دلیل بهشون میگن ایندی که اساسهای مختلف و با ریتمهای مختلف یه جایی از گیتاری استفاده میکنن که تو در هیچ موسیقی راکی استفاده نشده تا این ساختارشکنی رو بهشون میگن ایندی درسته خب اگر موافق باشی از یکی از مطرحترین گروهای موسیقی ایندی ایندی راک به اسم یانگ جاینت یه ترانه و پخش کنیم با عنوان کاف سیروب که من خودم شخصا خیلی علاقه دارم به این ترانه و بعد برگردیم و با صحبت در رابطه با بقیه زیشاخهای های موزیک که بحثمون رو ادامه بدیم البته من اضافه کنم که بیسیست گروه یانگ دی جایانت که میخوایم پخش کنیم پیام دوست داره ایرانیان اصل هستش که شاید دوستان جالب باشه که ببینید بله خیلی ممنون موزید. که به این نکته هم اشاره کردی پس با ما همراه باشید هوای سرد و برفی که وزش باد هم میتونه تبدیل به یه جهنم سردش بکنه یه چیزی که خیلی مشکله راه رفتنه یه مقاله داشتم میخوندم که صحبت کرده با یه دانشمند کانادایی که در مورد راه رفتن انسان تحقیق میکنه و ایشون گفته بود که بهترین راه حل اینه که شبیه پنگوان را بریم خب. بعد <تصفيق> <تصفيق> آره مثلا اینکه این پنگوئن ها که خیلی من بابام یادم من کوچول بودم به من میگفتش که کوتول کوتول را برو خب. ها یعنی قدم ها رو کوتاه‌تر بزنید قدمای کوتاه و و اینکه خب تپن اون سطح اتکام پهن‌تر باشه اینا در واقع کمک می‌کنه که شما پایداری بهتر روی برف و یخ داشته باشید بعد بنابراین نتیجه گرفته بود که اون خانم که باید بالا باد شده پنگوان را برید یه نکته ای که ها دارن و جالبه اینه که مرکز پایین ترشون خیلی دورشتره و سنگین تره و مرکز سقلشون پایین تره. بنابراین حالا از زیان اگه بخوایم سعی نکنه. حالا دیگه اینقدر عده پنگوانها در بیاریم ولی اگه مرکز سقل پایین تر باشه، باز کمک میکنه که پایداری بیشتری داشته باشید. هنر را رفتن. حالا اگه در کرده باشید تو این برف و سرما هم مردم رو ببینید خیلی شبیه پنگوانا راه میرن سرشون پایینه و سعی می‌کنن فقط جلو پاشونو ببینن دیگه تو این بره. کولاک آره اینم در هر حال مطلبی بود آره خالصه اینم از این آره بعد اتفاقاً من یه خبر خیلی جالب و بسیار داغی همچنین در حال قلقل کردن هایم خب. جوش گرفتیم دستمون امروز آوردیم سرما هستن خیلی خبر کانادایی و مهاجرتی ویزای اینا که روز 3 فوریه سایت مهاجرت کانادا از طرف دفتر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که از 6 فوریه که فردا باشه تمام درخواست‌های ویزاهای توریستی برای کانادا به صورت اتوماتیک برای ویزای مالتیپل انتری در نظر گرفته میشه یعنی ویزای چند بار ورود که به مدت ده سال هم در نظر گرفته میشه و هر بار به مدت 6 ماه یعنی افراد میتونن در مدت ده سال چند بار وارد کانادا بشن و تا هر دفعه خب به اندازه شیش ماه میتونن اقامت داشته قبلا قبلن هم همینطور بود ولی خب باید جداگانه درخواست برای ویزای مالتیپل میدادیم نهایتا هم مثلا دو تا سه سال معمولا میدادن یا حالا تا پنج سال تا علت برای ایرانیا به هر حال ده سال صادر نمیشه چون چیزی که خیلی مهم تاریخ انقضای پاسپورت پاسپورت های ایران الان 5 سال است یعنی در بهترین حالت اگه یکی خیلی پاسپورت تازه تمدید شده یا ببره برای صدور ویزا نهایتاً حالا به پنج 5 سال خ خبر خوبی بود استث که قیل تو. بر کشورها آره. من چیزی ندیدم هیچ تبسرره یا هیچ لیستی. نبود چون حالا اگر که شنوندگان ما در جریان باشن از ماه ژانویه برای یک سری از کشورها برای 29 تا کشور از جمله ایران اثر انگشت در واقع میخوان برای هر نوع ویزایی چه دانشجویی چه توریستی چه کاری دولت کانادا اثر انگشت درخواست کرده یعنی جزء شرایطه و خب می مدار کار سخت کرده دیگه چون خیلی ها آنلاین اپلای میکردن برای ویزا ولی خب این به هر حال خبر خوبی بود دیگه آره یعنی به صورت جداگانه یه. لازم نیست که برای ویزای چند بار ورود اقدام کنم کلی زمان س... در واقع ه... صرف جوی میشه کلی هزینه آره دیگه. صرف میشه و آره دیگه. آره دیگه و اتوماتیک خودشون برای چند بار ورود در نظر میگیرن خیلی عالی یه خبری داشتم که یه اتفاق خیلی عجیب و دردناکی تو متروی مونترال اتفاق افتاده بود برای خانومی امه. که ایشون مثل اینکه از یکی از ورودی های مترو استفاده میکنه که ورودی خیلی شلوغی نبوده و مثل اینکه نگهبانم نداشته تصمیم که از پله برقی استفاده کنه شالگردنش تو پله برقی گیر میکنه. خم میشه که شالگردن در بیاره موهاش گیر میکنه. ای بابا و نه کسی هم نبوده تا بهش میرسن کشیده میشه رو پل برقی با یه وضعه فجی و متاسفانه از خفگی جونش از دست میده عجب. آره خیلی اتفاق عجیب بود از اون اتفاق که واقعا مقصر اصلی رو آدم کی بدونه من فکرم شخص اسرائیل باشه چون وایستاده بالا سر اون که تا نمیری نمیرم خوب یعنی حالا آدم میمونه مثلا بگه ش... مواظب شال گردنتون باشین نمیگم مواتونو ببندین حتماً خب. یعنی نمیگم جلو پاتونو نگاه کنین شال گردن نپوشین آخه آره. چی بگه آخه بعد نوشته بود که چند سالش بوده این خانم فکر می‌کنه چند من حالا اینو خوندم گفتم خب شاید خانم پیر آره، بوده منم چند حالا فکر مثلا 47 ساله آه بس جوونام مثلا خیلی عجیبه میگن عجل دنبال آدمه. ولی کم برام عجیبه حالا نمیدونم تو مثلا کجای مترو بوده چون من مونترال من خیلی از مترو باشه استفاده کردم یعنی یه سفر البته رفته بودم چون زندگی نکردم ولی من یادم نمیاد پله برقی یهو خیلی آره اری خیلی جالبه دارم فکر میکنم که یا شاید فقط یه جاهایش که یه مقداری باسازی بوده شاید داشته من یادم نیست چون بسیار مترو قدیمی داره یعنی اصلا با مترو تورنتون با گاری مقایسه اصلا یعنی با گاری راحت‌تره که من یادم من چمدون داشتم مجبورم از ایستگاه سان وقتی که رفتم بین یعنی وسط را مونده بودم پشیمون شده بودم تعداد زیادی پله به اندازه مثلا فکر دو سه طبقه بعد همه پله بود و همه مجبورن از اونها استفاده کنن. خود مم. قطار خیلی باریکتر یعنی به نسبت تورنتو اگه مقایسه بکنی، خیلی قدیمی و کهنه مثلا قابل مقایسه نیست. عجب. ولی حالا به حال حالا خلاص این, این یکی از اسکاین آره، ولی خوبه، فقط نکته خوبیه که دوستان توجه کنن چون به حال خیلی جاها آدم از پل برقی استفاده میکنه و تو این فصل سرما هم شالگردن آره، داری دارین، باشن چیزایی که آره. ولی شالگردن گیرت خم نشه لطفا من فکر کنم توصیه که من میتونم بکنم اینه. واقعا بعد مناسبه. و آره. قبل از اینکه آهنگ بعدی رو بریم، نیلوفر تو خبری داشتی از جشنواره توی گلف مثلاً که درسته؟ آره اتفاقا حالا خوب شد. الانم مصاحبه رو گوش دادیم راجع به موزیک فعلا تا یه ذره تو حال هوای موسیقی هستیم. یه خبر محلی هم بدیم که یه جشنواره هست به صورت سالانه برگزار میشه به اسم هیل ساید اینسایت فستیوال که در شهر گلف برگزار میشه و امسالش از تاریخ 7 تا 9 یعنی همین ویکندی که میاد از جمعه تا یک شنبه برگزار میشه و گروه های مختلف موسیقی فولک موسیقی راک و سایر گروه ها میان اینجا برنامه اجرا میکنن خیلی هم پرترفداره بعضیشون گروه های معروفی هم هستن و جاهای مختلف هم برگزار میشه ولی یکی از اصلی ترین محلهایی که من دیدم داشتم برنامه رو نگاه میکردم کلیسای سنت جورج بود که کجاست که فکر می کنم توی خیابون وولویچ باشه الان مطمئن نیستم آره مرکز شهر داخل گولفه که دسترسی آسون باشه و حال حالا اینم گفتیم که دوستانی که مقیم گولف و اطراف گولف هستن اگه علاقه دارن به شرکت کردن این فستیوال ها این هفته ویکند فستیوال هیل ساید این ساید هست سایتش هم که کامل برنامه ها رو با ساعت و گروه هایی که شرکت میکنن اطلاعاتش موجوده ما توی فیسبوک هم البته آره شیر کردیم با. اینو حال خب پس ما میخواستیم مثل این که بعد از این خبر موسیقی آره این خبر موسیقی و این که من میخواستم تشکر بکنم از یه تعداد از شنوندگان خیلی خوبی که ما داریم و از ایران میشنون برنامه ما رو البته روی فیسبوکمون میان از ساوند کلاد در واقع برنامه رو میشنون و خیلی برای من جالبه که اینو خودم تازه متوجه شدم در ایران وبسایت سایت سی افار یو که وبسایت سایت رادیو هست فیلتره آره. حالا علتش نمیدونم واقعا چیه مثلا به خاطر پسفند سی ایش نباید باشه چون فکر نمی همه سایت هایی که به این صورت اصلا برصورت فیلتره خیلی از دوستان ما حال با تمام این محدودیت هایی که هست خیلی لطف دارن و برنامه رو از ایران دنبال میکنن من ضمن که از همه دوستان خیلی خوبمون در ایران تشکر میکنم از همینجا یک سلام خیلی ویژه ای از طرف رادیو پارسان به همشون شون میکنم میخوام که یک آهنگی از شهرام شبپره به اسم تومیتونی پخش بکنم و این رو تقدیم بکنم به نسیم عزیز که خیلی به ما لطف داره و از ایران شنونده برنامه های ما هست پس این آهنگ تقدیم شما با ما همراه باشید به مرده من تو میتونی جون بدی به رقای خوشک من قطر قطر خون بدی تو میتونی قمامو خاک کنی تو, تو میتونی خونه های خیسمو پاک کنی تو میتونی للمو شاد کنی No vas سیاه میشه همه تو دلم دنیا میشه وقتی که دستای تو خونمون در میزنه دل من پشت دیوار از خوشی پرپر پر میزنه تو میتونی تمامو خواه کنی تو میتونی گونه های قیسمو خواه کنی تو میتونی تو میتونی و شاد تو تو عزیزان پارسانی تا دو روز دیگه المپیک زمستانی سوچی در روسیه برگزار میشه که خبرای خیلی جالبی در این مورد وجود داره که از اولین خبران بود که این یکی از پرحزینه ترین و گرونترین اولمپیک های تاریخ حتی از اولمپیک های تابستانی هم حزینهی که برای این شده خیلی بالاست. من اتفاق داشتم خبرای در این مورد رو می‌خوندم و چیزی که متحد شدم امکانات ضعیف برگزار کننده هاست تو سوچی مثل این که هوتلایی که در نظر گرفتن برای ها خیلی هتلای با امکانات ضعیفی هست من چند تا ویدیو می دیدم که اصلا توی هتلای هیچ تلویزیونی چ امکاناتی نیست موکتی نیست با دَمپای گذاشتن مثلا میری دو تا تخت یه نفرم هست و بعد نکته خیلی بامزه این بود که کیفیت آب آشامیدنی خیلی ضعیفه و آبش رنگ زرد داشت حالا من امیدوارم آب باشه واقعا ولی خب خیلی زعفرون بهش زدن انشال... آره ان شاء الله که زعفرونه باشه خیلی. بعد خلاص کیفیت آب خیلی بد و دستشویی‌ها مثلا اینکه وضعیت فجی داره و چیزی که من اونجا دیدم توی اون ویدیو این بود که امکان این رو نداری که دستمال توالت رو بندازی تو دستشویی و سیفون رو بکشی بعد بندازید توی سطل بغل دستشویی چون ممکنه دستشویی بگیره اصلا یه کاغذ زده امه. که توالت رو نندازید تو دستشویی حالا اتفاقا جالبه که من نمیدونم این بیشتر واقعا جنبه تنز داره ولی خب واقعیت که تو این محل استقرار خبرنگاران که سالنای بزرگ درست کردن و حالت اقامتگاه برای خبرنگاران حتی دسترویه که اونجا ساختن دسترویه دو ستایی هست یا حتی بیشتر و بینش دیواری نیست عجب. آره یعنی کاملا سیستم اوپنه بعد خب خیلی اعتراض کردن گفتن اصلا ما با این شرایط نمیایم و بعد یه خبری که اتفاقا من چند شب پیش داشتم تو همین سی تی وی نیوز میشنیدم و فیلمش هم نشون داد خیلی ناراحت کننده بود این بود که دولت روسیه اومده یه پولی داده به چند تا از شرکت ها و اینا برای کنترل کردن حیواناتی که تو خیابون هستن مثل سگ و گربه و اینا تومه های آلوده اینار پشکن ای تعداد زیادی از حیوانات اونجا کشته شدن همین وجود مثلا جنازه این سگا اینو تو خیابون افتاده و بعد گرور های حامی حیوانات خیلی نسبت به این قضیه شاکی شدن و فیلم تهیه کرده بودن بعد این حیوون رو یا مثلا حیونار میرن رها میکنن تا این از گرسنگگی بمیرن اه. یه جایی که غذا مثلا بهشون نرسه اینا رو برده بودن خونه حالا بهشون رسیده بودن غذا بهشون میدادن و یه کمپینایی رو انداخته بودن و از خیلی درخواست کرده بودن که اصلا توی مسابقات شرکت کنم به خاطر اینکه حقوق حیوانات در واقع زیر پا گذاشته میشه و آره. کلا اره خیلی زایرن خوب قرار نیست برگزار بشه. حالا خیلی بردی... خبرای عجیب غریبی این هول وجود داره و تهدیدای مثل اینکه تروریستی هم درسته. اتفاق افتاده و یه گروهی به تیم اتریش تهدید کرد و تا از ورزشکاراشو میدزده. یه وضعیت خیلی مبابا. عجیبی. حالا امیدوارم که این مسابقات به خوبی آره انجام شه و ببینیم شه. چطور میشه. البته اون دست دو نفره خیلی جالب بود فکر کنم ورزشکارا با یه بعد جدیدی از همدیگه هم آشنا میشن و خلاص خیلی عجیبه حالا این مسئله که اتفاقا میگم حالا من خیلی جالب بود و خبرنگارای خارجی ها واقعا شوکه شده بودن ولی بعد زیرا اون خبر نوشته بود که صحبت که کرده بودن با مسئولین برگزاری گفته این مسئله خیلی عادیه شما اگر برین توی خیلی از دانشگاه‌های قدیمی روسیه حتی خیلی وقتا سالونای در واقع دستشویی‌هاشون بیشتر از دو تا دست شویی بینش دیوار نیست. یعنی, یعنی چیز متداولی و تاریخی بوده ظاهرا در روسیه و هم جنبه دیگری از فرهنگ شناسی کشور روسیه والله حالا یه خبری داشتم از تیم ملی میگرفتم این بود که مثل اینکه که علی کریمی قراره برای تیم ملی دعوت بشه و و خیلی... خیلی علی کریمی برحال سن و سالی ازش گذشته و قرار نبود که توی تیم ملی دعوت بشه ولی مثل که اخیران از تغاظه زیادی که از کیروش مربی تیم ملی کردن دوست دارن که علی کریمی برگرده و کیروش این خبر دعوتش رو قبل از بازی تراکتورسازی بازی جامع اصفی تراکتورسازی و فولاد داد و تو این بازی هم خیلی الکنمی شارچ شده بود و گل میزد <laughs> گل میزد و ترکتورسازی برد آخرص فولاد هست کرد خلاصه خیلی جالب بود حالا انشاءالله که تیممون هم بتونه تو جهانی جمع موفق باشه ایشان. ولی آمادهسازی تیم ملی خیلی وضعیت ناجوری داره به اردواش یکی پس از دیگری داره لغ میشه ولی در این حال دبیر فدراسیون هنوز میگی ما میخوام کیروش رو نگه داریم تا یکی دو سال دیگه و از اوور کیروش میگه که کسی فکر میکنه با چهار روز اردو ما میتونیم تو جامعه نتیجه بگیریم یا دیوانه است یا تو دیزنی زندگی میکنه <تصفيق> یعنی دقیقا از این کلمه استفاده کرده آره خب ما... اردو آفریقای جنوبی که آخه لغو شده اصلا دبیر فدراسیون میگه هنوز لغو نشده نمیدونم حالا دوست من اعلام کرد آه. که لغو شده ولی باز... من چیزی که فهمیدم اینه چیه اینه که من دیوونم همین فهمو می‌خواستم بگم که کاملا یعنی کیروش خیلی لوت کرده پشت سرش گفته دیزنی و از این حرفا آره ما فکر کنم دیگه اینطوری آره. باشه خدا دیگه... صبر بده هم به کیروش هم به بازیکنان تیم ملی فوتبال حالا انشالله ببینیم که تیم ملیمون چه کار میکنه آره این هم از دیوونه ما خب برای بخش سینماییمون چند تا از فیلم های جدید رو پرده رو اول شروع خواهیم کرد یکی از فیلم های جدید Monuments من به کارگردانی جورج کلونی هست که فکر کنم اولین فیلم جورج کلونی باشه در نقشی کارگردان البته تو این فیلم هم بازی میکنه به امراه کلی بازیگر معروف مات دیمن، کیت بلانشت اتفاقا تو این فیلم هست و البته خیلی نقدای خوبی نگرفته ولی خب من فکر کنم برم ببینمش چون به خاطر یعنی بازیگر خوب حالا ارزشش شاید داشته باشه داستان جالبی داره مثل اینکه که داستان یه گروه نظامی در جنگ جهانی دوم که میخوان اثرای هنری رو از دست نازی در واقع نجات بدن خلاصه یه داستان عجوغری به جدیدی از جنگ جهانیه دوم هست و این یکی از فیلم هایی هست که به نظرم میتونید برید ببینید و فیلم جدید و الان رو پرده اکران میشه البته من اگه نجازه بده یه تحصیل بکنم که قبلا یه بار در سال 2005 جورج کلونی یه فیلم ساخته بود به اسم Good Night Good Luck Good night and good luck. آها. شب خیر و موفق باشی که اتفاقا اون موقع نقدایی خیلی خوبی گرفته بود چند تا جایزم یادمه که برد. آره اون موقع این فیلمو کار کرده بود، فیلم موفقی هم شد. و هم توش بازی کرده بود، هم کارگردانی کرده بود. نمیدونم تو این فاصله بازم فیلمی ساخته یا نه، ولی آره تجربه اولیش نبوده بعد. خیلی ما. تجربه زیادی نداشته. این, نه. این فیلم این بازیگر بوده دیگه. آره. و این فیلم هم خیلی استقبال چندانی مم. ازش نشده حالا اگه تو این سایت ها هم برید ببینید حالا ما بهش تبلیغ میکنیم شاید من به نظرم خالی از لطف نباشه حالا ببینن حالا دیگه جورج <تصفح> پلونی دیگه ادم نه دیگه جورج پلونی دیگه. از این استاندارد <تصفح> <دی> پایین‌تر نمونید <تصفح> <نمار>. آره بعد <تصفح> الان هم احتمالاً نیلوفر میدونه که جشنواره فجر هم در جریان بله. فیلم فجر خیلی افتتاحی جنجالی هم داشت دقیقا رو دیدم و خوندم بوده حالا آره. مثلا چند مورده یه بر حال انتقادایی که از مسئولین سینمایی میکنن و اینکه یه مدار فضا راحت تر باشه البته خب یکم گشایش هم شد تو این جشنواره فیلمایی که قبلا پخش نشده بودن اجازه پخش گرفتن و فیلمایی که حالا مورد توجه قرار گرفتن بعد از چند روز اول پخش فیلم چه اثر ابراهیم حاتمی ها که در مورد شعی چمران هست و فریبرز عربنیا هم نقش چمران رو بازی میکنه که مثل این که تو این فیلم یه چهره متفاوته از شاید چمران رو ارائه میده چهره به نوعی عملگرا تر حالا واقعی شاید. چند بعدی تر چند بعدی بعدم. تر آره مرسی و بخ اسمش چهست؟ چه خالی فکر کنم آخه یه فیلم داشتیم چند سال پیش مر اسمش چه که یعنی تو هالیوود ساخته شده بود چه گوارا بود یه لحظه فکر که اگر با طبیقی آمده راجب چه گوارا فیلم ساخته اون, عجیب بود اون چه چه گوارا سی اچ ای بود آه. بعد که در واقع اسم چگوارا بود آه. ولی خب آه. این چه چه سه نقطه هست خب و دقیقا چه هست به ماهو و چه آه. و فیلم مثل این که نقدای خوبی گرفته و جلوه ویژه مثل که در حتی نمیدونم واقعا جلوه ویژه چطور از کار در اومده و نداده باشه ما دیگه راضی <تصفيق> خب بود آره <تصفيق> مثلا که خیلی تلفات نداده این طور که <تصفيق> معلومه بعد ولی من یکی دو تا از کلیپاشو می دیدم تو یوتیوب خیلی دیالوگا هنوز تئاتر خیلی است خیلی حاتمی کیا ها دوست داره <تصفيق> که شعاری و اینا. خیلی اینطوریه و من پیش خودم مثلا می گفتم تو پاسگاه درافتادی تو کردستان آخه کسی اینطور حرف نمی زنه مثلا حملتم اونجا باشه دیگه من دیگه راحت تر صحبت یک جدیدی رو داره ها تمکی ها احتمالا میکنه آره خالصه تلفیق تئاتر و جنگ هنوز این توریه هنوز اون حسو میده یه فیلم دیگه هم که اه اه خیلی نقدای متفاوتی داشت فیلم جدید مسعود کیمیایی به نام متروپول هست که تو این فیلم محمد رضا فروتن بازی میکنه مهناز افشار پولاد کیمیایی حال پسر باباست دیگه ناره. و شقایق فراهانی و این فیلم خیلی مثل اینکه ناراضی بودن کسایی که تو پخش جشنواره فجر آخر فیلم یه دی دست میزنن یه دی هوم میکنن بعد آره بارها محسود کیمیایی همیشه کسایی بوده که یه دی طرفدار پروپاگاندششان یه دی خیلی مخالفشن دقیده. و متروپولا از اون فیلمای جنجالی است حالا بعد ببینیم تو گیشه چه میکنه. فیلم آخرم فیلم که نیلو فر اون دفعه هم اشاره داشت فیلم قصه ها اثر رخشان بنی اعتماد که قبلا اجازه نگرفته بود و امسال داره پخش میشه یه نقدی که ازش خوندم اینه که خیلی سینمایی نیست مهم. خیلی بدبختی رو نشون میده بدبختی متفاوتی هم شما میتونید اینجا ببینید ولی خب از لحاظ مستند یعنی داره شاید اینطور باشه آره و اینکه مثلا حالا به خاصی بازی های خاصی خیلی مثل این که طبیعی و فقط سری کرد دو معزلاتشون بده ام. چیزی که سیاه نمایی بصل داشته می کرده یا هست استفاده میکنم فکر خیلی. کنم سیاه نماییش هم آره زیاد سر. بوده به خاطر همین پخش نشده آره و... بوده آره ولی خب این هنر رخشان بنی هم هست برای اه... به تصویر کشیدن موزلات روز جامع به شکل تأثیر گذار آره واقعاً من فکر می‌کنم اگه حالا قرار باشه این موزلط رو هم داد بهتره که تأثیر گذار باشه دیگه یه باعث ایجاد یه حرکتی به هر حال از جانب کسی که میتونن یه کاری انجام بدن بر اون موزل بشه امیدوارم خلاص همیشه خوبی داشته حالا این یکی هم مثل این که نقدای خوبی گرفته حالا بعد ببینیم که اینا بعدن تو پرده سینما و مردم بیان چه استقبالی ازش خواهند کرد آره خب اگر موافق باشی برای قسمت آخر برنامه ما آهنگی رو بریم از مهنوش به نام کم میارمت و انشاءالله برمیگردیم و خودحفظی میکنیم بله پس با این آهنگ با ما همراه باش. بارد آورم میشی کمیاره می کمیاره می کممیاره می نمی شکر نبارم کمیش grateful کمیاره می کمیاره made نمی شکر نباره به کمی نمی شکر نباره خوشحالیم که یک روز برفی و سرد زمستانی دیگر رو همراه با شما دلگرم بودیم تا هفته آینده از همه تون خدافزی میکنم بدرود من ساسان با موفقیت معفقیت برای شما در هفته آینده تا ندایی دیگر از رادیو پارسان شما رو به خدای بزرگ میسپرم